هیپپاپ ایران آشنا بکنه طبق نظراتی که برای ما فرستادید و درخواست کرده بودید که ما بیاییم و از باقی هیپ هاپ هم مهمون دعوت بکنیم به برنامه و ما این کارو کردیم امروز گفتگو داریم با یک بیت باکسر یکی از اعضای تشکل ایران بیت باکس که کارشون رو به صورت حرفه‌ای دارن تو ایران انجام میدن اول جای تشکر داره از محمد دیاکو تنظیم کننده برنامه و مطروک آرت ورک که دارن پنج قسمت با ما همکاری میکنن در زمینه کارهای گرافیکی برنامه و همچنین از همه رسانه هایی که دارن کار ما رو بدون چشم داشته خاصی در صفحه هاشون منتشر میکنن در کانال هاشون به اشتراک میذارن و همچنین کسایی که کار را برای دوستانشون میفرستند یا توی گروه ها منتشر میکنند و باعث میشن که برنامه ما به گوش افراد بیشتری برسه و تحصیل بیشتر بشه خب بیشتر از این سعی میکنم منتظرتون نذارم مهمون این قسمت از برنامه احسان زیرو خب سلام احسان عزیز مهمون برنامه مایی خودتو برام معرفی کن و اگه سلامی داری اول کار با شنونده های عزیز ما در خدمتیم سلام خیلی ممنون بابت این وقتی که بریم دادیم واسه صحبت کردن من احسان مقامی هستم اصالتن بیر جندیم ولی یه شهری به اسم چابهار زندگی میکنم شاید خیلی هاسن ندارن چابهار کجاست بعد بیت باکسر هم در خدمت شما بیت باکسریم بله خب میخوام بهت بگم که برامون توضیح بده که بیت باکس چیه اول بیت باکس اون بیت باکس چیه که تا ما هم, هم بدونن منیش چیه بیت باکس میشه گوه یه جورایی زدن آهنگ با دهن زرب دهانی همچین حرفی یعنی معادل در ساختم مثل گفته آواز به عنوان رپ یه همچین چیزیه که با دهن موسیقی ایجاد میکنیم و آهنگ میزنیم خیلی هم شاخهای متفاوتی داره بیت باکس چه مثلا یکی دابستپ میزنه یکی اولد سکول میزنه هامینگ میزنه و کلی سبکهای مختلف که مثلا کسی هم شاید تو یکی خوب باشه مثلا من خودم مره. تو دابستپ مثلا خوب بودم و صدای مورد علاقم فروت بود یکی از صدای بیت باکس. الان از این سبکه که میگی میتونی هر کدوم شدی که کوچیک برای اون اجرا کنی بله حتما شروعونده ما بدون دقیقا هر کدومش کنی کدوم مثلا دابسته اینجوریه <تصفيق> خب این یکیشه ای هامینگش هم این حالتیه. هم چیزی. آره این صدا دقیقا چجوری در میاد؟ چون میدونی در آن یک داری صدای در میادی صدا دیگه هم اجرا همینه. میدونی بیت باکس از تمام اعضای صورت و فک و دهن از همه جا استفاده میشه. از لب دندون. حتی دندون آل زبون و این حنجره و ته هر هر از ها یه صدا رو ایجاد کنم مثلا این بیت نگاه کن مثلا خدای بیته مانکل جکسون رو فکرم من این با لبه این با زبونه این دوباره با لبه ها میگم که هم همجی روش میارم هرکش چون باید قسمت از دهنه راحت میشه همش ترکیب کرد همچین راحت هم نه <تصفيق> آره دقیقاً ببین بیت باکس برای چی استفاده میشه؟ توی کاربردش کجا هاست؟ کجا ما میتونیم باکس رو بشنویم میری معمولا تو می ها خیلی میتونیم بیت باکس رو بشنوی چون یه رپر وقتی میخواد رپ بکنه می تنگ های ریارره آره قطعا یکی از فرهنگ های هیپپ ها جز از فرنگ های و پنگ شاخه اصلی. هیپ ها به شمار میاد بیت باکس م. و حتما تو میتینگ ها حتما یه بیت باکسر هست حالا چه خوب چه بد به خاطر اینکه یه ریتم حداقل بیاد که رپر بتونه روش بخونه حتی مثلا تو آهنگ ها هم آهنگایی که همه میاد بیرون از بیت باکس هم استفاده شده نمونه ای ایرانیش مثلا آهنگ پرواپاچی از لیتو مثلا توش بیت باکس استفاده کرده میتونی اه... برا اون چون ببین ما تو موسیقی باز ضرب های مختلف داریم یعنی الان تو دو مدل ضرب به ما گفتی ولی باز ما تو میوزیک چون این مسابقه الان قرار یک مسابقه بیت باکسی باشه یک چیز اکتیو باها ببین میخوام برامون ضرب های متفاوت هیپپ هم اجرا کنیم مثلا ما انواع موسیقی هیپپ داریم ویست کست داریم نمیدونم اولد اسکول داریم اینا رو برام میتونی اجرا کنی؟ سایام میگم مثلا اولد اسکول فقط همون ضربش فرق میکنه دقیقا. مثلا با... حالا تازه آره، همون میخوام استایل ضربش رو برامون اجرا کنه مثلا خود الکترونیک هم میزنن با حتی اه... بیت باکس مثلا اینجوریه یا اولد اسکول پم پم همچین چیزی. انیوین در واقع تو میتینگ ها بیت باکسری یا آچار فرانسه است دیگه. اینجوری میشه گفت. همه جور چیزی میتونه اوکی کنه. آره، همچین چیزی. هم می‌تونی اونجوری نمیدونم فکر نکنم ولی من شاید به شخص ضعیف باشم نتونم خوب همه چی رو در بیارم ولی اون سمت یعنی ها خیلی چون می‌دونید اون‌ها از این نظر اشکالاً در واردش بشیم یکم. میدونی خارجیا یا خیلی تر از ماهان خب اما چرا؟ به خاطر این اون شغلشون بیت باکسه یعنی چی یعنی بیت باکس میزنم پول در میارم اما ماها چی؟ ما مثلا یه جا میرییم بیت باکس میزنیم یعنی که یارو کن اسکله خب و اینجوری میشه که ما میگیم با ما چیکار کنیم دیگه تو اینجا واسه س هیچ انگیزه ای واسه آدم واسه تمرین و اونقدر حرفه ای شدن نمیمونه میدونید چی میگم؟ والا تو هر جا بزنی میگن طرف اسکول من خودم رفتم دانشگاه اجرا کنم اه... ب... کانون موسیقی رفتم زدم همه‌شو اصلا به عبارت پشیمون شدم ریخت خوب ولی خدای نمیدونم کانون چی بهش میگن همین که اه... حالا بگذرین یه سری یه سری بسیجی بودن اومدن گیر دادن گفتن این موسیقی درست نیست و فلان نذاشتم برن بالا اما خب بازم تو ایران یکی دو تا از بچه ها هستن کار میکنن مثلا یکی از معروفتن بیت باکسر ایرانی که شاید ایرانی رو بشناسنش یوسف تبریزیانه که تو تهران نمایش داره بعد که جز گروه زانکو هم هست و یه زمانی هم خب تو تیم ما بود و حتی یکی از بچه همون به اسم احسانبوت توی دونه تلنت شو ایرانی هم شرکت کرده بود تا محله فینالش هم بالا آمد ولی خب شد. آره تو هیپاپیه معروف فرم میکنم نیما نیموش آره نیموش همه همینطوره یا مثلا تورش پارازید ولی یه چیزی رو میدونی یا مثلا قدر خب اینا هیچ کدومشون اه... واقعا جدی جدی میگم اصلا در حد بیت باکسره تیم ما نیستن برایش الان چه جوری میتونی مثلا ثابت کنی که نیست؟ من حتی اتفاقا چند وقت دیگه یه بتله. خب من خیلی خوشحال میشدم اگه نیموش قدر یا همون تورج پارازیت بیان تو این بتل شرکت کنن چون من خودم چاوهارم نمیتونم بیام. اما بقیه اعضای تیممون اونقدر خوب هستن که میتونن راحت اینا رو مچشون رو بخوابونن. من اگه بتون بتل شرکت میکنن بچه های تیم ما. اگه اونا میتونن تو اون بتل شرکت کنن آه. همه چی مشخص دیگه. قضیه بتلتون چیه؟ که یه اتفاقی قراره بیفته. دو تا بتل تو راهه. یکی بهمن ماهه، یکی دیگه‌م احتمالاً تابستونه. تابستون به خاطر اینکه بچهای شهرستانم بتونن برن. اما خب بهمن ماه که بچهای تهران میتونن برنشون. ولی هر کدوم برگزار کنندهشون فرق میکنه تابستون برگزار کنندش زانکوه اما بهمن فکر کنم دسترویرزه. بچه بچهای ایران بیت‌پاکس اونجا حضور دارم پس. آره، حضور دارم ما بهشون خبر داریم هر کله با چت تیم بخوام میتونم با شرکت کنم تو بتل. آره. ببین گفتیم ایران بیت باکس به ایران بیت باکس برام توضیح بده. چی شد که اصلا ایران بیت باکس درست شد؟ ایران بیت باکس چطور درست شد؟ میدونی من خودم از راهنمایی فهمیدم بیت باکس چیه یعنی سوم راهنمایی. اولین بار رفتم گفتم جم تی وی همین شبکه یه بیت باکس گذاشته بود خب. گفتم چقدر جالب مثلا شما ماواره دارید؟ آره ما ماواره داریم. چو خونه هم روی نگاه می‌کنیم <تصحیح> <تصحیح> بعد آقا هیچی دیدم بیت باکس بودم چقدر جالب از دهن نمیدونم آهنگ میزنن چقدر خوبه این گفتم من اون موقع خیلی خودم متال و اینو چیزا خیلی دوست داشتم هم هیپاپی بودم هم متال هد بودم گفتم هیچ فکری بودم یه گیتار الکتریک بگیرم و اشغال کنم باش بعد دیدم که آقا نه هزینه‌اش نه پولشو دارم نه وقتشو که مثلا برم کلاس اینجا کلاسی نداره که بخوام برم گیتار الکتریک یاد بگیرم خب بیخیار. بیت باکس رو دیدم نه نیاز به وسیله ای داره نه نیاز به پولی داره واسه خرش کردن یه اینترنت میخواست با یه دونه دهن خودت خب پس من چیکار که گفتم آقا اینو من میرم یاد میگیرم دقیقا یادم اول در یاد گرفته بودم یه چیزایی خیلی زعیفا مثلا همین اینو یاد گرفتم آیا. رفتم آقا با کلی خجایدی گوشه مرسلشون بر خودم میزدم ای که بچه اینکه بچه‌ام گفت اه چقدر با باحال فلان دیگه از اون روز به بعد من یه خورده ترش کردم اول یاد بعد دیگه همینجوری کم کم تو این فیلتر شکن نداشتم تو یوتیوب که نمیتونستم برم تو آپارات رو نمیدونم گوگل سرچ میکردم بیت باکس بیت باکس چیزی چی نمی‌اومد تا یکی بود به اسم به من ویدیوی من, من. من تو اون قسمت نمیدم چندمیش ویدیوی من هست من یادم ازش بیت باکس یاد گرفتم از همون ویدیواش بعد یک قسمتش گفت آقا میتونید کلیپاتونو بفرستیم و من یادم کلیپ هم براش فرستادم تو آخر ویدیوش هم گذاشت آره بعد آقا هیچی دیگه این بیت باکس رو یاد گرفتم تو جانیانات بعد یک روز تو توی آپارات یه کانال زده بودم کارمو میذاشتم متوجه شدم که آقا یه پسری اومد گفته چه آره یه گروه بزنیم و فلان و اینا ده من هم تو فکری آره چه خوب میشه یه گروه ایران بیت باکس جم کنیم آقا این پسر بیخیال بیخیار شد دیگه پیگیر نبود خب من تو همین آپاراد پسر پیدا کردم به اسم مسیح اس وی اس لقبش اس وی اسه این اینو پیدا بیشترس. کردم <تصفح> <تصفح> <تصفح> پیداش کردم و آقا گفتیم یه گروه بزنیم من هرچی بیت باکسر میشنستی از کنو آخه تو ت... فکر کنم آره تو تلگرام یه گروه زدیم هرچی بیت باکسر میشناخ اد کردم منم هرچی میشناختم اد کردم یوسف و حسن و افشین توت و... ایمانو خیلی افراد دیگه سلمان و اینا انا بچه بچهار بگم 21 نفر گروه همون خیلی زیادی آقا تو این را ما شدیم چهار تا عدمین منو مسیح و سلمان و یه پسره دیگه خب که اینا خیلی کمکمون میکنن همش یعنی از همون اول اول که گروه زدیم دیگه اینا با ما بودن یعنی شما شدید مؤسسان ایران. آره من و سلمان و مسیح اینجوری میشه گفت آره اوایل خیلی مردم دنبالتون میکردن الان نمیدونم خودتون نظرتون چیه آره دقیقاً همینطوره من قشنگ نظرسنجی میذاشین مردم خودشون فوروارد میکردن یه سریاتون طرفدار داشتین دقیقا همینطوره اون یه زمانی بود اتفاقای باحالی داشت میفتن. یه زمانی بود اصلا تو تلگرام هیت شده بودیم خب من تو مثلا سوپر گروه ها میرفتم واسه سرگرمی منو میشناختم. گفتن ای مثلا این اومد چه فلان خب خیلی هیت شده بودیم اه. حتی کانالمون به 4500 رسیده بود اما بعد یه مشکلات داخلی خوردیم خب خیلی مشکلات داخلی شدید با یه سری از اعضا و یه سری از ادمینا میشه گفت که بعد همه رو به هم ریخ دیگه بعد از اون رو بعد دیگه انگیزه هم نموند میدونی ما مثلا همه بیتای شاخمون رو زده بودیم نمیدونیم کلی تلاش کرده بودیم آدمی انتظاراتی داره واسه انگیزه من حتی الان مثلا تو فکر درآمدم خب که یه درآمدی جور کنیم او. از بیت باکس که بتونم به اعضای تیمم بدم که بتونن یه انگیزه ای داشته باشن واسه کار کردن واسه تیم آره دیگه هر کاری به نظر من یه پیش‌زمینه‌ای میخواد که برای آدم انگیزه بشه و بتونه ادامه بده آره دقیقاً همین به خاطر همین سطح خیلی از هنرها توی کشور ما پایینه دقیقاً همین هنرهایی که نمیشه ازش درآمدزایی کرد که بعضی چیش بعد دیگه همین میشناخترمون اما خود دیگه مشکلات داخلی خوردیم میخواستیم کانال رو عوض کنیم آن تو در این دریم بین حتی آیدی کانالمون از همون دزدیدن ما اول آیدی کانالمون ایلان بیت باکس بود خب اما الان شده آی آر بیت باکس بخاطر اینکه اون آیدیمون رو دزدیدن ازمون بعد دیگه اینجور مشکلات تا اینکه دیگه دوباره دوباره این اواخر یکی از ادمینای نامردی که در حقمون همین واسه همین اسمش رو نمیخوام بیارم مو اولا بهتون گفتم چهار نفر بودیم من و سلمان و, مسیح و یه پسر اسم این نمیخوام بیارم به خاطر اینکه این یه نامردی که در حقمون ما تونسته بودیم با بیت باکس حالا هزنش خیلی کمه یعنی مثلا یه واقعا ناچیزه اما دو هزار تومان حدودا یعنی 180 هزار تومان جمع کرده بودیم از چه تبلگاری که تو کانال گذاشته بودیم چه بیت باکس هایی که یاد داده بودیم هرچی خب این بنده خدا دیگه یه می رو گفت دبه کرد پولار داریم دست این دیگه بهش اعتماد داشتیم دبه کرد و پولار رو برداشت ما خب تنهاخوا که می توسیم بکنیم بود که حسفش کنیم بعد کانال کانال میگم پیج اینستان اونم 21 کا بود که اونم دست اون بود خب اونم به باد فنا رفت و یه پیج دیگه زدیم که الان هفتکاس خب باشه احسان حرفای با حال میزنی. ولی میخوایم یکی از بهترین قطعه ها تو مهمونه میکنی همون که خودت بیشتر از همه دوست داری بهترین؟ آره بهترین چی؟ بهترین قطعه که خودت از همه بیشتر آها. دوست داریش فش داره ولی رو نمیگم بگو بگو راحت باشه اینجا گفتگوی با آزاده اتفاقاً <clears throat> زلمش من خودم, خودم خیلی بیتر دوست دارم الان میزمم همون bitch to to to همین بود to to to to to to to to to to to to چیزی to to to to to to to میخونن خیلی خوبه مثلا ببین خیلی ساده است ولی خب باید انگلیسی بلد باشی مثلا رو حرفایی مثل به خب مثلا بگو بگو خب؟ میتونید اینجوری میگنش یا مثلا ت داشته باشه میگن تو تو میبینی چالهاتی عشان حرفاش معلومه آه. که رو کدوم میشه یه بیت ساخت بعد اونا راحت میچینن شی... می یه بیت باکس رفت درست میسازن اینم بلدی نه من اینو بلد نیستم ولی تو تیم اون یکی بود بلد بود که اونم به خاطر بی اخلاقی بیرون <laughs> کلا مدیریت خوب میکنی شما. دیگه مجبوریم چیکار کنیم؟ من برامون بگو. رشت؟ چیه؟ من خودم الان راستش رو بخواید دانشجو هم ترمیه 1 مهندسی مکانیک دانشگاه درنوردی چابهار. آره. چابهار یک شهریه توی استان سیستان و بلوچستان. آره سیستان و بلوچستان. مثلا بچه‌هایی که اصلا تو تیممون هستن همه هم سه سال همیم. همین حدوداییم 18یم نمیدونم 19 حتی 17 16 سال هم داریم. ما یه زمانی تو گروهمون دخترم حتی داشتیم، دختر بیت باکسه قوی نبود خیلی. اصلا ما میدیم پایمون بر چی بود؟ میگفتیم آقا پسرا فقط در ساعت جوین میشن که یه چیزی واسه رو یاد دادن داشته باشن. یعنی یه ساعتی از ما بالاتر باشن تا ادشن. خب چون ما ساعت هم ساعت خودمون دیگه نمیخوایم. میخوایم ساعت خودمون چیکار. خب برای دخترها رو گفتیم نه آها، دخترها خب چون هم تو ایران کمترن هم خب یک شاید ضعیفتر باشن تو اول کار ضعیف هم قبول میکردی یکیشون خوب بود ام. که بعد دیگه اونم که کشگردیم حسان اگه ازت بخوام مقدماتی بیت باکس رو یعنی یک چیزی رو به همون یاد بدی که مثلا شنوندهی که داره گوش میده ام. علاقه بشه یعنی این پای اصولش یاد بگیری که بره سراغ بعدیه بیت بس. مثلا اون چیزهای که بهباکس یاد میداد ولی خب تو یکم مختصر تو دو سه دقیقه میتونی برامون یاد میدیم؟ آره می خیلی راحته مثلا صدای آسون هم یاد میدیم مثلا پایه پایش اون ضربه که بر بزنی این کیک کیک میدیم چطوریه بعد دقیقا مثل بعد بگی به فشار بیاری بگی بی ناکن بی بی. بی. بی بی بی بی بی بی بعد این هامینگ همین اینه به میگن هامینگ خب اینو هست میکنی باید میشه بعد تمرین کنی تا سلاش نمیدم ترتمیز در بیاد بلند در بیاد این از این خب هامینگ هم که یاد گرفتیم مثلا راحت اینجوریه این چیزی حالا این دوتا صدا شد خب بعدی مثلا هایهته که این خیلی آسونه بعد بگن ت رو بچسبونن خب زبونشون بچسبونن به پشت دندون و بگن ت ولی با فشار ت ت ت ت ت یا مثلا صدای بعدی هم میتونه بگن تی اس تکام اوپن هایهته اسمش اینو من تس آره یا مثلا صدای بعدی کلاپه کلاب یه, یه نامه سخته بعد با ته حلقشون بگن کا بعد با ته حلقشون بگن کا اینطوری یا مثلا صدای بعدی اسنیر که پی و افه نه کن بعد پی پی با اف و ف اینا رو بعد به هم نزدیک کنن حالا که یه سامپل ساده برامو بزن یعنی یه چیزی که همین چیزه که داری یاد میدی با همینه که یاد دادی که برای اینطوری بازن کن الان از ستای بزن. کیک و های هت و اسنر استفاده میکنم اینطوری با همین هم آدم میتونه براتون میتین آره خب آره قطعا با هم براتون می میتونه اصلا میتونین راحت تغییر بده با همین تا کلی بیت میشه ساخت مثلا میبینی اصلا با همهشون کلی میشه اصلا ستای پای همینان تو همه بیتای نه هستن آره ببین احسان ما تو برنامه برناممون رول برناممون اینه که از مهمونامون قول میگیریم یه چیزی به یه اثری برامون به یادگار بذارن یعنی رپرهامون برامون فریستایل استایل اجرا میکنن آینگ برامون قطعه درست ام. میکنن تو چی دوست داری بدی خب من بگم ترتیزی که بتونم بدم یه بیت باکس آره ام. بس اینو بیتباکست هم برامون میفرست آره ویدئو یا ویس کدو رو میپسندی؟ ویس مهتره البته ویدئو یکم برامون چیزتر میشه ویدئو یکم متنوه متنوعتر میشه و ویدئو اوکی آقا ویدئو برامون میپسند حتما رفتم بیرون ویدئو برای شما زبط میکنم قطعا از خاطراتت برامون بگو تو میتینگ ها رفتی حتما دیگه نه شاید باورت نشه. یعنی واسه هیچ رپری تو نه. چرا واسه ببین بچه‌ها اینجا مثلا چابهار واقعا خیلی محیط عجیبه غریبی داره خب تو تهران حالا مثلا بیت باکس میزنه همینم وای پسر چقدر بیت باکس خوبیه حالا یارو مثلا هیچم بارش نباشه خب اما یه جایی مثلا مثل چابهار که شهر کوچیکیه هیچکم اسکلو هیچ کشت نمیدونه چیه بیت باکس حالا میزنی دقیقا اینجا خیلی چند برابر همه جا میگن یارو اسكله فهمیدین ولی واسه یکی از رفق که رپره خب زدم ولی بعد فهمیدم که من اصلا نمیتونم رو ی رپر باشم میدونی الان من حالتی که معمولا فقط فریستایله یعنی فریستایل واس خودم بزنم هر جور که خودم بخوام میفهمی؟ اما خب دقیقا اینجای رفیق دارم هم. که دقیقا باش تمرین میکنم اونم آوردم تو تیم ایران بیت باکس یعنی بعد از این که یکم پیشرفت کردم کرد ولی خب اون میتونه رو رپر یعنی خوب بیاد مثلا من آها هر چیز یک یادم رفت این بود که حتما اونایی که میخوام بیان بیت باکسرشن یه دانش موسیقیایی داشته باشن یا یعنی نمیدونم گیتار زدن بلد باشن نوتار رو بشناسن یا یعنی همچین چیزی چرا به خاطر اینکه میدونی می همه بیت باکسرهای موفق ا نوتا رو میشناسن نمیدونم خوشم یا گیتار میزنن یا پیانو میزنن یه سازی بلدن خب خیلی واسه اینکه بیت ساختن واسه اینکه بدونی یه آهنگوش کنی بتونی بیت باکس بزنی خیلی کمک میکنه بیت. الان مثلا من هیچ دانش موسیقی ای ندارم خب تجربی یاد گرفتم الان تجربی میفهمم یه بیت از چی ها تشکیل شده چطوری میتونم بزنمش خب و این خیلی کار سخت میکنه ولی اگه دانش موسیقی داشته باشی خیلی راحت تر میتونی همه این کار انجام خباره دیگه ولی خب تو به خاطر بستر کچک شعرت نتونستی هنوز اون بود هیپاپی و بیتپاکس رو به جا بیارید آره اینجور میشه گفت فقط واسه تا دو اونم <تصفح> چون رفیقان بودن تو خونه اجراتون رسم بکنم ولی خب حد چقدر سعی کردم <تصفح> اتفاقا الان تو فکر اینم خب که هفته قراره یه کار متفاوت بکنم بعد این هم سعی دارم که یه میکروفون خودم دارم یه دونه <تصفح> باند جور کنم ببینم یه جایی هست چاوار منطقه آزاده خب یه مجتمع تجاری داره اونجا شلوغ شلوغ میشه او؟ اونجا اجرا کنم حالا هر مردم هر چی میخوام بگم بگم اول میخوام این کارو بکنم اینو میتونی برای اون فیلم بگیری بفرستی حتما فیلم میگیرم وقتی انجام بدم یا از ایران بیت باکس میخوای پخشش کنی خب جفت آیدای جفتو میذاریم توری نیست نه نه ببین یه فیلم برای ایران بیت باکس میگیری که بگیری ولی خب یه فیلمم تهیه کن و اسم گفتگویکی پاپیرو بیار و ما خیلی خوشحال میشیم علاوه بر اون فیلمی که بهم امون قول دید سایامو میکنم حرف آخری چون تایم مسابقه امروز خیلی کوتاه بود و اگه حرفی موند من ازت مذارت میخوام نه چیزی یادمون رفت حرفی داری به عنوان چیزی که کسی که میخواد این راه شروع کنه باید توشه راهش بکنه و برای خودش الگو قرار بده این رو برامون بگو و خب، میدونی اولین اه، چیزی که لازمه واسه این کار اینه که پشت کار داشته باشی خب یعنی من یه صدای هست بهش میگن لیپ رول من یک ماه،, یک ماه فقط این صدا رو میزنم تا یادش بگیرم این صداست خب این صدا خیلی صدای سختی یک ماه طول کشید این صدا رو یاد بگیرم ولی پاش موندم که گفتم من این صدا رو باید یاد بگیرم خب یکی پشتکار خسته نشدن و اینکه از مسخره شدن نترسن من خودم که اینجا هم بابام زارت و زرد مسخرم میکنه بابام حالا مثلا رفیقامو او اوایل منو مسخره میکردن که این چیه بابا بوم بوم میکنی فقط فلان چرت و پرت ببینید نولد مسخره شدن بترسن چون من از همین الان میگم قطعا قطعا مسخره شو آره خب, خب بعد شهامتشو داشته باشو کسی که میخواد چون هیپ هاپ کلا کارهای جالبیه و کاره این جیه تو ایران هم قابل قبوله است خاصه بیشتر بشه بعد جرأتشو شده شده کسی بخواد راه هیپ هاپو پیش بگیره باید با این چیزا هم مقابله بکنه آره آقا دمت گرم خیلی خوشحال شدم که قبول کردی تو برنامه ما باشی از طرف بچهای گفتگوی هیپ و همه شنونده ها برات آرزو میکنیم برای, میکنی. برای تیمتون ایران بیت باکس آرزوی ترقی و بالا رفتن بیشتر میکنیم و همین مچکر که تو برنامه ما منم آرزو میکنم واسه تیمتون ادوارم که شما هم به جای بالای دست پیدا کنین و از این دستکار ها واسه حمایت از اینجا هنرهای هیپپپی رو بیشتر انجام بدین. مچکر ازت و خیلی ممنون و خدا به همونست. خب این قسمت هم به پایان رسید. تشکر از شما عزیزان که این قسمت رو هم با صبر دقت و حوصله مثل های قبلی گوش کردید و امیدوارم که چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید از این قسمت و فهمیده باشید که چجوری یک آدم عادی میتونه یک بیت باکسر حرفه‌ای بشه بدون هیچ امکانات و تجهیزات خاصی چون بیت باکس نیاز به هیچ تجهیزاتی نداره و به قول احسان خودت و یک دهن و میتونی بیت باکس اجرا کنید و یه کار جدید انجام بدید. نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو در صفحه اینستاگرام برنامه با آیدی hiphopinterview ارسال کنید و به گوش ما برسونید تا ما بتونیم برنامه خودتون رو بهتر از قبل بکنیم. و همچنین برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و بذارید که اونها هم با اینکه چطوری بتونم بیت باکس اجرا آشنا بشن یا آشنا بشن با نحوه زندگی بیت باکسر خب بیشتر از این سرتون درد نمیارم منتظر قسمت های بعدی برنامه باشید و تا قسمت بعدی برنامه باهاتون هاتون خدافزی